ببخشید استاد محترم لطفاً بفرمایید که بریدن گردن با کار چه حکمی دارست جناب شاگرد محترم شما بگید که در بر رقم منش گردن اینها را کلم کنید چه با شمشیر کلم کنید چه با کار ببورید فرقی دارد چه یک رقباری بر سرشون خالی کنید و اینها یعنی امتصال به حکم خدا می کنند و امتثال به حکم خدا همین است یا نه گردن نهارا بزنید یعنی گردن نهارا سجده کنید سبا کار جدا کنی سبا شمشیر جدا کنی لحاظ فرقی داره در جدای اون راحت حد جدایش می کنه بسم الله الله اکبر الله کو ذکر گردن راست تجدا کنی تو لحاظ هو این که چه حکمی دارد حکمش من نمیتونم صادر کنن رب العالمین صادر کرده اگه عقیده که این کتاب کتاب رب العالمین از حکمی برای دشمنان صادر کرده اونهایی که اجرامی کنن اون شما زبونی و عبابی الرحمی اینهایی ای که پانزده کن آتش میویزن نامردانی موسیقا اینها ارزه مقابله ندارن با آتش مارا میسوزنن ما ظالمی اونها این راحت گردن شجدہ بھی کنے این گردن و این سر پھلید را کہ دشمن خالق و مالک این باید از این تم جدا کر کہ دنگر تحرک نداشته باشه. شریف ہو حکم صریع الله حامین فدر بر دیگه دنگر چیمان آئی دار درست ہے این حکم خدا رای جرک سیبی کنے ظالم ہے ظالم ہے اینی ہر طریقے گردنش جدا میشود خدا بداند که چه میلیارد سوابی داد الله خوش میشه نمیشه دشمن شما را کسی گردن بدنش خوشحال نمیشی دشمن خدا هستان گردنشو نمیزنن الله تعالی خوشحال میشه خب خب خدا چرا خودش گردن نمیزنه همیشه خدا گردن میزنه نمیزنه همه را می کوشه گردن نمیزنه ها باز اله با زلزل اینها همه گردن و نیهای الهی شان دس شاند، دست ثانیه، هزارن گردن لحکرد و گزاشت زیرین آنها، زیرین آنها، اکمیل گرد، یہ کہا نہیں آمده بودین جائے بچه سبحان اللہ فیرسش کرده اگلت این گناہ ما حاصل بچهان اللہ تعالیٰ فیرس اینکی خدا، اینکی خودش طرح موحی و ممیت معرفی نہیں کنی ہو ایوحی و ایو مین، شفرمون ربیالوی یوحی و یمید یوحی و یمید یمید ما نشید گردن درسته بله آنها که مردن بدون صلاح گردن گیسه ها استاد اگر مسلمانات نظر اصله و غیرم استاد نباشه باز هم جهاد الاسمیه مگر اونا که مردن دارن هیچ تجهیدات نظامی در برابر دشوان ندارن برگردن کردن. این هم کار تانزنی که صلاح بر می‌دارم. وقتی سال شما را بران خودش حکمت جهاد زمینه بالا یاش الله دلش نمی‌ته حکمت جهاد حکمت جهاد شی. الله تعالی خودش چه را اجازه را نمی‌زنه به ما دستور داده گردن می‌زنه وا ضربه رکاب به ما دستور داده ربا رب مگر خودت توانی گردن بزنی؟ میگه بله من که میتونم گردن بزنم من میخوام عشق شما را به نمایش بگذارم که شما چقدر پداکاری واقعا عاشق واقعی منید یا عاشق حلوایی هستی فقط حلوا میخورید و میدشینید یا گردن تقدیم میکنید برای من خود به حکمت جهاد امتحانه ورنه اللہ تعالی خودش می توانه دشمنانش بدون تدهیر نظامی بگیره با یک جدکه هزاران مجرم را به بارگاه خودش احضار کنند با یک دستور که دریا مست بشه بر الهین حرکت کن چه هلمتر و سی و پنج متر آمد بالا چدان این را غافل گیر کرد که توصیه که نفست کشی به این و توی آب غرق شدن آسان یا سخت این هارا توی سخت مانه زیر آب بود ماشین این هارا مثل یک بوشکا و مثل یک کارتونک روی آب آورد آور محلت فرار با ماشین به این هار این هارا با خود ماشین آورد روی آب این قدرت در اول عالمی دی. دست دستو حکمت جهان چیه؟ یک آزمونه که وانا شما عاشق حقیقی هستی حاضری سر روی کف برای معبود بگذارید یا شما آشق قرمائی پکت امروز من و شما مجنون حلوائی عاشق بهشتی آشق دیدار اللہی لیکن در اجرای حکم خدا سلامه سلاح نداریم انهایی که واقعا عاشقا لحظا میبندم بم را و برای خالق خود را تقدیم میکنم خنده میزنند که امروز میریم برای دشمنان الهی کربانش هزار تارا بیویسی بی ست تارا با خون پاک خود وارد از فلانس میکنند، میکنم و خون را به خون را به محبوب تقدیم میکنند. و محبوب هم از ما الان خون میخواهد لا بلا یشاء الله اگر میخواد صلی اللہ تعالی شما میگی است استشاده در زمان صحابت جنگ تنبتنی بودیانم تنب گردن ها دلو کلم میشدن یا و تنهاد گردن کافر کلم میشده گردن مومن هم کلم میشد و کافر ها گردن کلم می گردن می گردن دیر دستفای پی لها لیف شدن صحابا تاکی به منو شما اسلام رسید تاکی پیام اللہ را به ما رسانی دن چاند دادن یا ندادن دا اللہ تعالی میگه این امتحان ہے من بیخواهم ثابت کنم که شما مجمون بحقی هستید یا مجمون حلوائید امروز همه ما اشک خدا دارید لیکن حاضر نیستید یک در به خدا بدین حکست از سبحان اللہ نیت خاله من سبحان الله نیت سلاانها عاشق ها اگر خود تقدیم میکنه میکنه یا نمی یکی گفتم شما عشق میریزید عشق شما میریزه اینجا خون مجاهد میریزه یکی عشق میریزه برای خدا و یکی خود سلافیر میکنه برای خدا کدوم عاشق واقعی یعنی که عشق میریزه که خون از روح سائل نبی هم عشق ریخ. لیکن خون همه از رخصار سرادید شد دهان مبارکش خون سرادید بود یا از دهان مبارک رسول اللہ خون میریده و از دهان من شما حلوه و پپسی سرادید اونها سروران گرامی آشق واقعی من شما عاشق حلوهی خون بریزی بعد هم یک سفره پر از نعمت پک میشه مقداری اشریخ و سبحانه ماشاءاللہ مجدد اونها خون میریزن ولی برای خوردن نا گیرن این مجاهدها در کلهای کوها و نان خوردن هم گیر میگن حق صبح افطار من شما اون مجاهد هم روزه ندارد لیکن حقام افطار نان خشکی در حد کافی گیرش نمید و صبح من شاء الله تنان نان میگه من حلوا میگه من او میوجات میگه من لعظن انوا اخسان لعظن فرشم اینه این دیگه اپا بھی می کہ کہ اول خود رو باید اصلاح کر بعد جہاد کر ما مکی اصلاح ما زیر حکم خدا هست یا نا او من میگم بزرگترین وسیله اصلاح ما جہاد ہے چرا بگو چرا ہمارا حب مان حب جا و حب ریاست بدبخت کرده حب مان حب جا حب ریاست ما مارا بزبخت کرده حب زندگی و حکام زندگی ما را از بین برده و علاج ما جهاده وقتی ما به جهاد میریم، حب جا حب ما، حب زندگی حب ریاست از ما گرفته نمیشه تا جهاد نریم اصلاح نمیشه مجاہدهای عربا زنها میان و خدا یکی از جهاد زنها بسیار متحصر و این فاطمه های احراغی بودند برای جهاد آمدند یا نا آمدند قیام فاطمه احراغی را خاندید کسی طور مجاہدی بود گفتد آم مرد آبیرون چرا نشستهی بیایید برای جهاد تا چان ما گرفته بیشید امروز ما به دست دیگران حسیدیم من که یک روزی برای جهاد نرفتا یک روز هم نرفتا لیکن جراد مجاہبیم را این بھی تو این اعتقاد را دارم کہ اگر کامیابم انبیش خدا حدینا و اگر رسول مورد صلی اللہ علیہ وسلم گفتے یہ گروہی کامیاب تا قیامت از امت من باقی باغیم ایمانا دھمینا انعقیده من جراد کتانی کہ جراد بکنن و برایب خدا کشت مشم جنت مستمیمینا ما دیگر آپ بھی امید رحمت را بے امید رحمت پایہ حقیقت امید رحمت پای الہی حسی کہ رحمت الہی مارت را. این امید مال مار. خدا باللع او حضرت مرحوم جهاد را ظلم ساکت و عدل آدن. کشونی سروران گرامی کافری که با این همه تجهیزات و آمه در افغانستان و در ایران ما مسلمانها اثر را دیگر راهی نداری یا اینکه حکومت و اقتدار این کافرها را تسلیم بکنی و دور درکت نماز بخوانی و با خود مسلمانها شروع بکنی مذاکره دینینا این یک دیگر کاری بیکارانه بلد نشم آیا خدا به ما و پیغمبری اجازه را میدهند که وقتی کافر آمد شما سکوت کنید یا با جان و زانو و حما بمبارزه حرکت اسلام به معنی اجازه در قرآن در سنت در فقها به ما این اجازه را اسلام نداده که کافر آمد حوات این جامعا حرکت کنیم بریم امریکا جهاد کی غرز را نداری امریکانات را نداری علم بلی یہ کافر با تمام امکانات وارد شده آیا ما تنہا بخاندن نماز اکتفاق کنی؟ او یک دیگر را دعوت و ابلاغ برای نماز و روزا و ذکر و تلاوت کنی؟ آیا این وصیح برا خدا پیغمبر و فقہا بمای نجاز را دادا نا خب صورت دوم اینه با بانه هم کار هم یکی بریم پلیسش بشیم یکی بریم سپورش بشیم یکی بریم توی ارتشی که تشکیل میده مثلا سبتنام کنیم آیا این قسمت را که با آنها همه هم بشیم اونا هر برنامه برای ما بریزن هر سیدی برای ما پخش کنن هر دعوتی برای ما پخش کنن و ما در خدمت گوش و کار بکنیم این چیز را اسلام میپسید پس اسلام میگه که شما با کافر همه بشید برای آرمان های کافر اون هم کافر حربی این اسلام میپسیده و صورت سه و مینه که به ما آرزو هرکار، هر انداعی که توان داری هرکار. ما داریم و من مسلمان نه لیکن مقصد تبلیغه و جهاد راه تبلیغ. آن نمیگم یا نمیگم. میشه که میگم و آذو راه نماده. جهاد مقصود نیست بلکه ما میگی بدون جهاد ما ارزه تبلیغ نداریم، قدرت تبلیغ نداریم. طاقت تسلیم نداری گویا یک زهر شب می ما گیرتی جنگل راهه گویا زهر شب می نره تمام